و این عشق به خاطر آن دختره که ساله ساله‌ای است که وقتی ما را میچید سرگلین میخاند و به خاطر آن موهای زرد و طلایی است که حالا ما این چنین خوش خوشبویی اپیزود نهم و همینجا فصل یکم هجده بنفش رو زودتر از موعد تموم می‌کنه بعد این اپیزود ویژه برنامه هجده آذر رو داریم و بعدش ویژه برنامه یالا و بعدش فصل دوم هجده بنفش با رویکرد جدید میاد سراغ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 من نمیدانم چرا خواستم از ها بگویم شاید به خاطر آن مغازه لکس پروشی در ابوذر است شاید بتوان از میان لکچری ها هم یک سری چیزهای خوب بکشی بیرون چیزهایی که هنوز آلوده پروشی ما های مخلوقات نشدند مثل همان های زیبا و سفید و رنگی پنگی و حتی لوکس که درونشان شم روشن کرده بودند و گل گذاشته بودند و مادرم عاشق شم است و این قفسها انعکاس نور از میان میلههایشان روی دیوار و بسیار زیبا می شود و اصلاً چرا اینها را می گویم؟ اصلاً چه عادت است که با کمک این واو عجب یک ریز و یک نوس هی می گویم و می گوییم و می گوییم بو عطر های بنفش که در قفس من مانده است می بینید این خاطرات است خاطراتی که مثل گنجشک های کوچک و قهوه ای یک جا نمی ماند باید یک قفسی باشد که آنها را نگه دارد حالا قفس خاطرات مغز آدم است خاطراتی که یک عطر می تواند کلید ورود آن با باشد خاطراتی که قدرت ویرانگریشان یک پس گردنی پدر و مادردار میزند به بمبهای اتمی نیروگاه های اتمی جهان یاد آن شر از حمید مصدق عزیز افتادان که میگفت وای باران باران شیشه پنجره را باران شد از دل من اما چه کسی نقش تو را خواهد شد آسمان سربی رنگ من درون قفس سرد و اتاقم دلتنگ می پرد مرغ نگاهم تا دور وای بارا بارا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 از آن طرف زیباست و مهربان خوب مثلا قفسی که درش باز است دیگر قفسی نیست یک خانه است که توانید تویش شم روشن کنی و به آن نگاه کنی قفسی که پر است از رنگی پنگی دیگر بد نیست اصلا قفسی که درش باز است و بنفش است و شیشهای رنگی پنگی دارد که دیگر قفس نیست وقتی توی یک قفس با مادرت باشی دیگر قفس نیست ماهیت قفس هم عوض می شود در یک چشم به هم سلم.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 منی که هی میگم امش مربوط به خود من نیست این من شاید شما باشید شاید او باشد و یا حتی شاید من باشم داشتم میگفتم که اصولا با اجبار نمیشود کاری کرد به قول آقا رضا مارمولک اینقدر گیر نده به این جوونا آخه به که زورکی نمیشه عزیز برادر اونقدر فشار میاری که از اون ور جهنم میزنی اصلا همین اجبار خودش قفس است یک قفس تنگ و تاریک و نمور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 انگشت اشاره دست راستت از دود سیگارهای تند و یخ کنتت زرد شدند و هی پک میزنی یا و هی پک میزنی به اندازه سالها سکوت یخ زده ای چقدر پیر شده ای لنتی و خودت هم نمی که من چقدر دوستت دارم و تو خودت هم نمی دانی. هیچ سکوتی در دنیا نیست هیچ آبی نیست هیچ ماهی نیست حتی هیچ گربهای نیست هیچ بیگانهای در دهکده مارک نیست هیچ گل روز سفید پیچیده شده در پلاستیکی نیست هیچ گل نرگز یخزدهی نیست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 تو خودت هم نمیدانی که چقدر پیر کرده ای خودت را لنتی قفص ها هر چیزی میتوانند باشند چیزهایی که از دست میدهیم و چیزهایی که به دست میوانیم چیزهایی که میبریم و چیزهایی که میبازیم چیزهایی که خوشحال ما میکنند و چیزهایی که قمگین می کنند. چیزهایی که با آنها افتخار می کنیمیم و چیزهایی که بجوری ما را سرلب کندنده میکن قانون نسیت عام و خاص سرنیشتنم جلو این قفص ها و مسالقشان کمی کم آورند ایننگار نمیدانم شما اهل ورق بازی هستید یا نه ما در این بازی ها 52 تا برخ ورق داریم ورقهایی که معانی خودشان را از ورق های تارود گرفتن خش به معنی پول هست گشنی به معنی اصلح پیک به معنی شمشیر و ددل به معنی یه عشقز یک آهنگی دارد این استینگ به نام شپ ما ها یعنی شکل دا من. ستان یک قمارباز است قماربازی که برای پول بازی نمی کند بلکه برای کشف یک حقیقت بازی می کند او می خواهد از توی کارت ها حقیقت زندگی خودش را پیدا کند او دنبال یک قانون است قانونی روحانی قانونی که بر اساس اصل احتمالات یا حتی شانس باشه یک بازی کنه خوب نباید احساسات خودش را نشانده چون طرف مقابلش دستش را از روی حالت صورتش می خواهد. برای همین قار ما یک نقاب همیشگی روی صورتش می اندازه.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 قفسها ها شاید همیشه ها بد نباشند ولی در اصل گاهن نمیشود آن بود منفی گونه درونش را به بیرون پرتاب کرد و در بیشتر مواقع آدمی را به ورطه نابودی می کشند نابودی که با حبس های طولانی و شلاق و شکنجه شروع میشوند و با خاطرات و مغز عزیز هم همکاری پیوست و کاملا ناگوتستنی دارند می خواهم یکی از تجارب و البت دستیافت های را در مبارزه با این قفس های نابود کننده با شما شریک شوم از وقتی که کمی عقل شده فهمیدم که فراموش کردن بهترین کار تو قشنگ ترین چیز دنیا هست. حتی قشنگ تر از زیبا ترین چشم های دنیا. ولی مشکل اینجا بود که مفت مجانی که نمیان این بهترین کار و قشنگ ترین چیز دنیا را بدهند مثلا به ما. به جایش یک پیلاخ گنده نشانه دادند و گفتند اهک اه باید دانست که فراموشی رابطه ای کاملا مستقیمی دارد با بفاک رفته. به این شکل که اگر نتونی فراموش کنی امروز بفاک مینه، فردا بفاک مینه. پس هم فردا هم مطمئن به که که کماکان بفاک مینه. اصلا می شود یک رفته در فراموش نکردن ها؟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 هر 8 ساعته یکی اش رو با یک لیوان آب یخمان میندازی بالا و بعد یک دوره سیتای می میشه یک موجود خوشبخت جدید. بعضی هستند هم هستن که خدادادی آنزیم فراموشی را بدنشان بدنشون می کند. همچین خیلی خجوج و مرزنه. میگویند این موجودات ارزشمندند. مکانیزم اثر آنزیم فراموشی در بدن این گونه است که این آنزیم در ابتدا سنسور بیخیالی را در بدن کاملا فعال میکند. سپس با این سنسور کاملا رفیق ندار میشوند و میروند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 بلکه به صورت خیلی منتالیزم و ذهنی در قفص خاطرات مغز ما محبوس شدند. یادتان هست آن اول ترها گفتم که قفص آدم را یاد زندان میاندازند یاد آن شعر پرنده های قفصی عادت دارم به بی کسی، و یادتان هست که گفتم اصولاً قفس می بالها را خوش کند و پود کند از کار بی اندازه. یادتان هست که قول دادم برایتان بگویم بزرگترین قفس عالم که ما را به سرداب سردرگمی های ازداد می اندازد چیست در چندین دقیقه قبل هی برای برایتان از متزات گفتم که درون مغز ما می هی ما را شاد میکنند و هی ما را غمگین می کنند هایی که در اصل قفس های فکر و روح ما هستند قفس هایی که میزان منفی بودنشان می و میزان مثبت بودنشان قفسها چیزها و کسانی هستند که ما را در خود زندانی می کنند. چه خوب و چه بد در اصل نفس زندانی شدن بد است. حالا جنس زندانت از خوبی باشد یا از بدی. نیبینید قفس خودش بزرگترین قفص دنیا دنیاست. خود ما بزرگترین قفسهای دنیای خودمان هستیم. خود ما سازنده این از داد قفس گونه از هانمانه. ماهایی که خودمان را پشت هایی که شبیه خودمان نیستیم قایم می کنیم برای اینکه خودمان را طور دیگری به دیگری نشان دهیم. آره قفص ها چیزی نیستند جز این نقاب هایی که خود ما را درون خودشان مخفی کرده. قفص ها چیزی نیستن جز دروغ و حیله و پنهان کاری برای شکستن قفص هایی که شدن صاحبان ما بهتر از هرچه زودتر دست به کار شویم تا دیگران پرنده قفصی و غمگین و بخ برگشته نمشیم. انتخاب با خودمان است. اینجا رادیو هجده بنفش بود جایی که هم هجده بود و از قرار بنفشم میدانید چرا از زنگ تفریح بیزار بودم چون بیشتر از هر زمانی تنهاییم را برخ می کشید. اینجا رادیو هجده بنفش بود و شما قفذ را شنیدید که هر روز بیشتر تنهایی ما میکنیم. که بعضا شاید هم بد نباشند قفس همین است که ما را در مشتش بگیرد و دیگر نباشه. و این بود کم رادیو بنفش. پس لق فقط نه قسمت داشت ولی فصل دوم احتمالاً 18 قسمتی پخش کنیم و احتمالاً هفته ای یک بار باشه به جای دو هفته ای منتظر ویژه برنامه 18 آذر و ویژه برنامه یلدا باشید رادیو 18 بنفس زنده است و زنده خواهد بود تا وقتی من زنده هم تا وقتی دنیا داره میچرخه تم No